یا چون کسانی که در معرض رگباری از آسمان که در آن تاریکی ها بر رعد و است قرار گرفتند از نهیب آزرخش و بیم مرگ سرنگشتان خود را در گوش هایشان نهند ولی خدا بر کافران احاطه دارد